به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز ما سری برنامه های جدیدی رو شروع می که برای کمک به شما عزیزان طراحی شده تا مهمترین کتاب دنیا، کلام خدا کتاب مقدس رو بهتر درک کنید. آرزو داریم ترتیبی بدین که هر روز با ما باشین تا به طور منظم کتاب مقدس رو با هم مطالعه کنیم و یاد بگیریم حقایق اون رو بپذیریم. این رادیو با همکاری دانشکده کوچک کتاب مقدس به شما فرصت میده که کتاب مقدس رو مانند دوری در دانشکده الهیات یا مدرسه کتاب مقدس مطالعه کنین. حالا معلم ما اینجا به ما کمک میکنه که بسیاری از مطالب سخت کتاب مقدس رو و موضوع اصلی اونو درک کنیم که همان بازخرید انسان گناهکار توسط خداست حالا به درس یک گوش کنید کتب مقدس چیست؟ سلام من احساس می کنم که داریم آماده سفری با هم دیگه میشیم به کلاس جدید ما خوش آمدید اسم این کلاس کلاس کوچک کتاب مقدسه و ما کتاب مقدس را از اول تا آخر در 180 درس با هم بررسی خواهیم کرد ظاهرا سفری طولانی در پیش داریم ولی مطمئنم که به سرعت به پایان خواهد رسید من که برای این کلاس خیلی هیجان دارم میدونم شما هم همینطور هستید پس ترتیبی بدید در این سفر همراه ما باشید و از دیگران نیز دعوت کنید در این کلاس مرا همراهی کنند که مهمترین کتاب دنیا کتاب مقدس را با هم مطالعه کنیم اگه شما با گروهی آزم سفری طولانی بشید مثلا اگه با یه گروه سیچل نفره به سرزمین مقدس برید سالها بد وقتی اون افراد رو ببینید وابستگی بین شما خواهد بود چون سفر زیبایی رو با هم تجربه کردید من احساس می کنم که الان در حال سوار شدن به کشتی برای رفتن به چنون سفری هستیم چون راهی سفری مطالعاتی برای بررسی 66 کتاب از کتاب مقدس هستیم در ضمن بررسی 66 کتاب کتاب مقدس به محتوای هر کدام از کتاب ها نظری خواهیم انداخت به طرح کلی اونها و از همه مهمتر پیام حقیقی هر کدام از کتاب ها خواهیم پرداخت یا به عبارت دیگه کاربرد عملی شخصی کتاب مقدس رو در زندگی خودمون بررسی خواهیم کرد گروه هدف این دوره مطالعاتی عموم مسیحیان هستند مخاطب این دوره مطالعاتی عموم مسیحیان هستند من شخصا بر این باورم که کلیساها برای چیزی که به اون آماده سازی افراد یا اعضای کلیسا میگیم بالقوه توانایی دارند پولس رسول وقتی گفته که ما باید برای آماده کردن مقدسین برای خدمت گرده هم بیاییم اون رویا رو با ما در میون گذاشته بر این باورم که او در اون آیه افسوسیان 4:12 به ما یاد میده که کار خدمت به مقدسین سپرده شده یا به مردم آماده شده و اگه می‌خوایم ببینیم کار خدمت حقیقتاً انجام شده پس به افراد کاملاً آماده شده نیازمندی هدف عینی ما در این دوره مطالعاتی در حالی که کتاب به کتاب کلام خدا رو بررسی می کنیم اینه که ببینیم مردم آماده و تجهیز شدن تا ایمانشون رو با بیانی شیوا و تأثیر گذار در کوچه و بازار در بین دوستان و اقوام و همسایگان اعلام کنند. مخصوصا می اون کارکنان آماده کلیساها معلمین کانونهای شادی و همه کاران کلیسا خود رو وقف درک جامعه کتاب مقدس بکنن برای نیل به این هدف در حالی که این 66 کتاب کلام خدا را بررسی می کنیم، من بخشی از کتاب و مقدس رو مشخص خواهم کرد تا بخونید. به این تکالیف خواندنی یک کتابچه ی تکالیف نوشتنی هم هست. همینطور برای هر کتابی من یک دفترچه یادداشتم برای آیات و سوالات پیشنهاد می کنم که به شما کمک خواهد کرد محتوا و پیام حقیقی و کاربرد شخصی این کتاب رو در زندگیتون بهتر درک کنید. اگه دقت کنید میبینید که وسایل زیادی برای بررسی این 66 کتاب کلام خدا در نظر خواهیم گرفت. اگه واقعا تا حالا کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه خونده باشید، اون وقت مطمئنم که شما از این حقیقت آگاهید که این میتونه فقط یک مقدمه باشه. این یک استنتاج از کتاب مقدسه یا گرفتن بخش ها و کنار هم قرار دادن اونها که یک بارچه بشم. کتاب مقدس 66 بخش داره. اما ما میخوایم دیدی تازه از ارزش این مجموعه که به اون کتاب و مقدس میگیم به شما بدیم. به اتفاق خواهیم دید که از آغاز تا پایان این یک کتاب هست با یک پیام حیرتانگیز داستان آزادسازی و بازخری، میخوام شما رو در ابتدای این تجربه با هم دیگه به چالش بکشونم. مهمترین چیزی که این دوره رو برای شما ارزشمند میکنه اینه که آیا خودتون رو متعهد می کنید که دانشجوی وفاداری باشید؟ پولس رسول به ما میگه تنها راهی که وقتی صحبت از کلام خدا هست میتونیم از شرمنده و دست پاچه شدن مسون بمونیم اینه که مرد کاری باشیم. تنها راه برای درک واقعی کتاب مقدس کار کردنه. میخوام همینجا شما رو به چالش وادارم در ابتدای این دوره مطالعاتی خودتون رو ملزم کنید که یک درس را هم از دست ندید و کار کنید و تکالیفی رو که بهتون داده میشه انجام بدید. افراد خیلی زیادی رو داشتیم که این دوره مطالعاتی رو گذروندن و در یک مؤسسه خدمتی پذیرفته شدند بسیاری از سازمانهای خدمتی شرط به کارگیریشون داشتن اطلاعات وسیع کتاب مقدسی به علاوه مهارت خاص مورد نظر هست اگه این راهی برای برانگیختن شما هست پس علاقمند میشید که بیشتر در کلام خدا تعمق کنی ما کتابچه های تکالیفی برای شما تدارک دیدیم که همراه دانشجو خواهد بود ایمان دارم که اینها براتون خیلی مفید خواهد بود از را استفاده کنید مطالعه کنید و اون را یاد میگیرید با دیگران در میون بذارید در طی بررسی این کتابها تکالیف و یادداشت آیات به شما کمک میکنه که از دانش حقیقی کتاب مقدس بهره مند بشی در مایلم در همین ابتدای دوره مطالعاتیمون در ابتدای این سفر خارق العاده با هم راجع به ابزارهای مورد نیاز شما برای این دوره چیزی بگم تا بتونید کتاب مقدس رو مطالعه کنید می دونید که نجارها، کشاورزان، دندانپزشکان، جراحان، ساعت سازان همه ابزارهایی دارند و اونا اگه میخوان که از حرفه و تخصصشون بهره بشن، باید بدونن از اون ابزارها چطور استفاده کنند. در هنگام یک مطالعه جدی کتاب مقدس، شما ابزارهایی نیاز دارید و من مایلم به برخی از این ابزارها اشاره بکنم. اولین ابزاری که بدیهی و ضروریه، کتاب مقدس شماست. توصیه میکنم کتاب مقدسی با جلدی مقاوم انتخاب کنید شاید یادداشتی در کتاب مقدستون بکنید این خوبه و به شما کمک میکنه متن های مهم رو به یاد بیارید شما در طی سالهای متوالی که این کتاب مقدس رو مطالعه خواهید کرد با اون معنوس خواهید شد اگه کتابتون مقاوم نیست باید اونو کنار بذارید چون اون پاره میشه پس اگه در تصمیم مطالعهی کتاب مقدس جدی هستید توصیه میکنم یک کتاب مقدس مقاوم تر بگیرید امروز ترجمه های خوبی در دسترس هستند اگه در کشور شما ترجمه های خوبی نیستند این جمله قبلی رو ندیده بگیرید اما به اعتقاد من برای وضوح بیشتر خیلی بهتره که از دو ترجمه استفاده بکنید ترجمه های متداول در کشور شما ترجمه های خوبی به لحاظ درستی و قابل فهم بودن وجود دارند خیلی بهتره که از دو ترجمه استفاده کنید ترجمه های متداول در کشور شما ترجمه های خوبی به لحاظ درستی و قابل فهم بودن وجود دارند ابزار مهم دیگه کشف هست. بعضی کتاب مقدس ها در آخر کشف دارن. کشف کتابیه که کلمات کتاب مقدس رو با حروف علف با منظم کرده و به ما میگه که محل اون کجا هست. اگه از شما دانشجویان کتاب مقدس یه سوالی مثل این بپرسن، اگه شما در یه جزیره گیر کردید و فقط حق داشتید یه کتاب غیر از کتاب مقدستون داشته باشید، دلتون میخواد اون کتاب چی باشه؟ بسیاری بدون تردید خواهند گفت کشف دلیلی که کشف این همه ارزشمنده اینه که اولا اگه شما کشف داشته باشید میتونید کتاب مقدس رو مطالعه موضوعی بکنید میتونید هر موضوعی رو در کتاب مقدس انتخاب کنید و اگه اون رو در کشف نگاه کنید کشف ولایات مکان‌هایی رو که به اون کلمه در کتاب مقدس اشاره شده به شما میگه از پیدایش تا مکاشفه اون یه مرور اجمالی از موضوع رو به شما میده یقین دارم به این دلیله که دانش کتاب مقدس این همه به کشف علاقمند هستند دلیل دیگه که چرا کشف ابزار ارزشمندیه اینه که کشف کمک میکنه محل آیات رو پیدا کنید چند بار تا حالا کسی به شما گفته کتاب مقدس کجا میگه پول دوستی ریشه همه بدی هاست و شما به مغزتون فشار آوردید و گفتید نمیدونم اونو کجا گفته نمیتونم حدس بزنم کجا اینو گفته با یه کشف شما میتونید به این کلمات مراجعه کنید پول دوستی ریشه بدی به سرعت میتونید محل اون آیه رو پیدا کنید که میگه پول دوستی ریشه ی همه بدی هاست ابزار ای که برای مطالعه کتاب مقدس نیاز دارید یک فرهنگ لغات کتاب مقدسی هست لغتنامه نامه کتاب مقدس کتابیه که به شما راجع به افراد و مکان ها و اشیاء ذک شده در کتاب مقدس آگاهی میده اگه به سرزمین مقدس سفر کنید و یک لغتنامه نامه کتاب مقدس در کوله پشتیتون داشته باشید شما در هر قسمت از سرزمین مقدس مسلط خواهید بود چون لغتنامه کتاب مقدس به شما راجع به هر مکانی که در کتاب مقدس اشاره شده آگاهی میده. اون ابزار بسیار مهمی برای تحقیقات کتاب مقدسیه. در یک بررسی کتاب مقدس، ابزارهای دیگه هم هستن که خیلی مفید هستن و من این ابزارها رو توصیه میکنم. یک تفسیر کتاب مقدس هست که ابزار بسیار خوبیه و به شما کمک میکنه کتاب مقدس رو خوب بفهمید. دو دفترچه های راهنمای ما مثل یک کتاب تفسیر کوچک هست و توصیه میکن که اینها رو تهیه کنید چون اونها مهم هستند و به شما کمک می مطالعه کنید بفهمید و بعد به دیگران بیاموزید. شبانهای های زیادی هستند که به این درس های کتاب مقدس گوش می و مطالعه می شاید روزی کسی از شما سوالی از کتاب مقدس بپرسه. شما میخواد بتونید جواب درستی به او بدید. بعد البته لازمه که کاغذ یادداشت و قلم هم داشته باشید، تا بتونید سوالات رو یادداشت کنید یادتون باشه ما راهی سفری طولانی هستیم وسایلتون رو بردارید یک درس رو هم از دست ندید و از دوستان و اقوامتون دعوت کنید در این سفر پرماجرای مطالعه والاترین کتاب ها و پرفروشترین ترین کتاب جهانی در تمام دوران ها کتاب مقدس با ما همراه باشند در اناجیل گفته شده که عیسی بعد از رستاخیزش نزد رسولان رفت و حقایقی از کتاب مقدس رو با آنان در میون گذاشت به خاطر این حقایق کتاب مقدس که عیسی با رسولان در میون گذاشت عجیبه که انجیل میگه برای اولین بار در زندگیشون اونها کتاب مقدس رو درک کردند این حقایق درباره کتاب مقدس که عیسی با اونها در میون گذاشت ادراک اونها رو برای فهم کتاب مقدس باز کرد در همون روح مایلم حقایقی درباره کتاب مقدس رو با شما در میون بذارم و امیدوارم این حقایق ادراک شما رو برای فهم کتاب مقدس باز کنه. اولا دوست دارم راجع به تعریف کتاب مقدس فکر کنید. کتاب مقدس چیه؟ بسیاری از کتاب مقدس ما این کلمات بر روش نوشته شده. کتاب مقدس واقعا منظور ما چیه؟ وقتی به این کتاب به عنوان کتاب مقدس اشاره می کنیم عنوان کتاب مقدس از کلمه بایبل ترجمه شده که ریشهش بیبلیا هست که به معنی تعدادی کتاب هست. اگه به اصل کلمه مراجعه کنید، متوجه میشید که میگه کتاب ها نه صرفا یک کتاب. بایبل مجموعه است شامل 66 کتاب. وقتی ما میگیم این مجموعه از کتاب ها مجموعه ای مقدس هست، منظور ما چیه؟ معنی کلمه مقدس اینه. چیزی که به خدا متعلقه یا چیزی که از خدا میاد یا چیزی که از بعضی جهات وابسته به خداست. خدا منبع اون هست. این معانی کلمه مقدسه که متعلق به خدا معنی اصلی اونه چیزی که اینجا میخوایم بگیم اینه که کتاب‌های کوچک به نحوی خیلی خاص به خدا مربوط هستند خدا در نظر داره کاری محرک به وسیله این کتاب‌های کوچک انجام بده این کتاب‌ها حاوی های خدا برای انسانه و بر این اساس این کتاب‌ها کتاب کتاب‌های دنیا شدهاند بنابراین مطالعه کتاب مقدس مهمترین مطالعه دنیا به حساب میاد از این رو در صدد هستیم این کتاب رو مطالعه کنیم چون اون کتاب خدا برای ما هست همچنین به عنوان کلام خدا هم به این کتاب اشاره شده شنیدید که خیلی ها به اون کلام خدا میگن منظورمون چیه وقتی میگیم این کلام خداست ما به خاطر اظهارات انبیا و رسولان به اون کلام خدا میگیم مثل پتروس و پولس به طور مثال به این گفته پولس رسول دربارهی کتاب مقدس گوش کنی دوم تیموتائوس 3:16 و 17 به ما میگه تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارساهی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد در این دعای از کتاب مقدس پولس رسول داره میگه که خدا از نوشتن این کتاب ها منظوری داشته خدا پیغامی داره او میخواست با انسان گفتگو کنه و برای رساندن اون پیغام به انسان او مردان بسیاری رو برانگیخت. شاید حدود چهل نفر یا بیشتر. این مردان توسط خدا چنان برانگیخته شدند که کلماتی که نوشتن کلام خودشون نبود بلکه کلام خدا بود. در یک فاصله زمانی 1500 تا 1600 ساله این مردان و نوشته تبدیل به این تعداد کتاب ها شد که ما بهش کتاب مقدس میگیم. به فرایندی که خدا طی اون این مردان رو برانگیخت که این کتاب رو بنویسن الهام گفته میشه پولس میگه که این کتاب با الهام خدا اومدن کلمه الهام به معنی دمیدن هست و منظورش دمیدن روح قدوس خدا به این مردان برای برانگیختن اونها برای نوشتن این کتاب هست پطرس کتاب مقدس رو اینطور تعریف میکنه زیرا آنگاه که آمدن پرقدرت خداوند من ایسای مسیح را به شما اعلام میکردیم، از پی افسانه هایی که زیرکان ابداع شده باشند نرفته بودیم بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم هرگز هیچ نبوتی در کتاب مقدس ثبت نشده که توسط خود نبی ابداع شده باشه. چون منشه ظهور نبی اراده انسان نبود بلکه این مردان در حالی که توسط روح القدس به این سو و آن سو می رفتن، از سوی خدا حرف می زدند خولوس رسول به ما میگه معجزه کتاب مقدس از طریق فرایندی به نام الهام انجام پذیرفت. رفت. پتروس به ما میگه که الهام چی هست. او میگه الهام این هست پیام هایی که اون مردان در اون کتاب ها نوشتن. خود اون مردان نیستن بلکه ریشه در خدا دارن. همه ی که در این کتاب ها به واسطه الهام نوشته شدهاند برخواسته از قلب خدا هستند. خدا این پیغام ها رو با اونها توسط روح القدس برای بشر فرستاده. پتروس کلمه زیبایی در زبان یونانی به کار برده. اون کلمه فعرو هست. در بسیاری از مناطق از ها به جای پل استفاده می‌کردند. این در اکثر مناطقی که آب زیاد هست به چشم میخوره. جایی که من زندگی میکنم یه قایق داریم که ما رو از سمتی به سمت دیگه میبره و چون اون ها ما رو از نقطه‌ای به نقطه دیگه میبره بهش معبر هم میگن. معنی کلمه فعر رو در زبان یونانی همین معبر هست این کلمه یه که پتروس به کار برده وقتی میگه خدا این مردان رو برانگیخت، میتونید باد رو در بادبان قایقهای بادبانی تصور کنید که قایقها رو به حرکت در میاره به قول پتروس این مصداق همون الهام خدا هست اصطلاح دیگه عبارت کلام زنده خدا هست که این مربوط به کتاب مقدس نمیشه بلکه مربوط به ایسای مسیحه به کتاب مقدس کلام مکتوب خدا گفته میشه به عیسی مسیح کلام زنده خدا گفته میشه یا کلام خدای زنده هر چیزی که او بود هر چیزی که او گفت و هر کاری که کرد کلام خدا برای ما بود خدا توسط کتابش چیزهای زیادی به ما گفته اما چیزهای خیلی زیادتری توسط پسرش عیسی مسیح به ما گفته خدا بیش از هر راه دیگی توسط زندگی ایسای مسیح و تعالیم ایسای مسیح با دنیا حرف زده بنابراین از عیسی به عنوان کلام زنده خدا یاد شده ما میشنویم که مردم میگن فلان شبان واقعا کلام خدا رو معزه میکنه معزه کلام خدا یک معجزه بزرگه شخصی اونو اینطور تعریف کرده کلام معزه شده خدا موضوعیه از طرف روح خدا با استفاده از کلام خدا توسط یک مرد خدا برای شبیه ساختن مردم به پسر خدا پولس رسول گفته خدا مصلحت دید که از راه موعظه جاهلانه انجیل کسانی را که ایمان میآورند نجات بخشه پولس این را درک نکرد اما یقینا به اون ایمان آورد و به اون وفادار بود وقتی او به محل میرفت و مجد ایسای مسیح رو اعلام می کرد، دریافت که وقتی کلام خدا یا پیغام خدا توسط مردی با هدایت روح خدا موعظه میشه مردم نجات پیدا میکنند و فرزندان خدا متولد می شن. حالا خوام چیزی درباره ساختار کتاب مقدس بهتون بگم وقتی به کتاب مقدس می رسید، در این اولین بخش میخوام فرض رو بر این قرار بدم که شما تا حالا کتاب مقدس رو باز نکردید اگه شما از قبل دانشوی کتاب مقدس هستید صبور باشید ما بعد از دو قسمت به شما خواهیم رسید این مهمه که بفهمیم 66 کتاب کلام خدا همه گی بر اساس زمان نگارش یا در زمان حیات نویسندگانشان در کتاب مقدس قرار نگرفتند شاید انتظار شما این بوده، اما به این صورت نبود. 66 کتاب کتاب مقدس بر اساس چگونگی اونها در کتاب مقدس جا گرفتن؟ 66 کتاب مذکور در دو دسته تقسیم بندی شدن. دسته اول عهد قدیم خونده میشن و دسته دوم عهد جدید نام گرفتند اما همیشه هم اینطور نبوده در ایام عیسی مثلا چیزی به نام عهد قدیم و عهد جدید وجود نداشته عهد جدید هنوز نوشته نشده بود پس کتابهای موجود در ایام عیسی فقط کلام خدا یا کتاب مقدس خوانده شدن. بعد از نوشته شدن عهد جدید و جمع در یک مجموعه ای از ها بود که تفاوت بین عهد جدید و عهد قدیم به وجود اومد. پیام ضروری این کتاب‌ها عهد قدیم اینه عیسی خواهد آمد این در واقع چیزیه که همه کتاب‌های عهد قدیم میگن در ابتدا بر طبق کتاب مقدس خدا و انسان در هماهنگی با هم دیگه بودن اما خدا انسان رو مخلوقی با اختیار خلق کرد و انسان تصمیم گرفت از خدا روی برگردونه و چون خدا نمیتونست از اون استیان و یا نافرمانی چشم بپوشه خدا از انسان برگشت و به این ترتیب جدایی بین خدا و انسان افتاد اون جدایی بین خدا و انسان مشکل زیربناییه که کتاب مقدس به اون میپردازه در عهد قدیم خدا به ما میگه آیا وقتی میگم تدبیری برای این جدایی خواهم اندیشید مرا باور میکنید و در عهد جدید خدا میگه آیا وقتی میگم چاره ای برای این جدایی اندیشیدم به من ایمان میاری ببینید کتاب های عهد قدیم میگن عیسی خواهد آمد و این جدایی بین خدا و مخلوقاتش رو از میون خواهد بود عهد جدید این خبر خوش رو به ما میگه عیسی آمد و وقتی او آمد این جدایی بین خدا و انسان رو از میون برداشت دو کلمه در انجیل مرقس وجود داره که خلاصه کل عهد جدیده اون دو کلمه دقیقا اینها هستند عیسی آمد کتابهای عهد قدیم تحت پنج عنوان مختلف اومدند قبل از همه کتابهای قوانین یا شریعت هستند این کتابها نص سریح کلام خدا هستند این جاییه که خدا در واقع به ما میگه چی درسته و چی غلط. این جاییه که او معیارهای ادالتش رو به ما میده. به دنبال پنج کتاب شریعت، ده کتاب تاریخ میاد. این کتاب تاریخ کم و بیش به ما میگن که گاهی مردم از این کتاب شریعت اطاعت کردند و گاهی نکردن. وقتی اونا از کتاب شریعت اطاعت کردند، اونا نمونه هایی برای من و شما شدند که پیروی کنیم. و وقتی از اون کتاب های شریعت نااطاعتی کردن، زندگی اونها عبرتی برای من و شما شد و کسانی که خواهند آمد. در اول قرنتیان ده 11 پولس رسول به ما از کتاب های تاریخ عهد قدیم کلیدی میده و یک کتاب تاریخ از عهد جدید. وقتی کتاب های تاریخ رو میخونید، به نمونه ها و هشدارها نگاه کنید. این نمونه ها و هشدارها بر این اساس واقع شدن گاهی اونها از کلام خدا که در پنج کتاب اول اومده اطاعت کردند و گاهی نکردند. وقتی اطاعت کردن نمونه هستند وقتی نااطاعتی کردند عبرت هستند. به دنبال کتاب های تاریخ کتاب های شعر بیان کتاب های شعر پیام خدا برای قوم خودش هست که سعی در زندگی طبق کلام او در این دنیا رو دارند. در کتاب های شعر خدا با قلب قوم خودش صحبت میکنه و پیام میده. برای مثال، در کتاب ایوب خدا پیغامی برای قوم خدا داره وقتی که در رنج هستند در کتاب مزامیر پیغام خدا پیغامی برای قوم خدا وقتی که پرستش میکنن راجع به همه چیزهایی که در هنگام پرستش در قلبتون جریان داره این پیغام مزامیر هست. در کتاب امثال خدا با ما از جریاناتی که وقتی در کوچه و بازار بین مردم هستیم و در قلبمون میگذره صحبت میکنه جمله ای هست که میگه وقتی تجارت میکنید، از دو چیز باید بهره بگیرید: پول و تجربه. وقتی شما با ادی تجارت میکنید که اونها همیشه پول به دست میارن و شما همیشه تجربه کسب میکنید، کتاب امثال نوشته شده چون خدا نمیخواد قوم او روزهای متوالی پی در پی فقط تجربه کسب بکنن. او میخواد اونا قدری حکمت عملی هم در روابط انسانی داشته باشند. به این دلیل کتاب امسال را به ما داده. کتاب جامعه پیامی از خدا برای قومش هست وقتی شکی در قلبشون دارند غزل غزل سلیمان پیغامی از خدا برای قومش هست وقتی که عشق میورزن. اون تقریبا مثل صحبت های دو دلداده در ایام ماحصلشون به نظر میرسه. بخش بعدی نوشته های عهد قدیم به لحاظ بابها و آیات وسیعترین بخشها بخش, بخش انبیا هست و شامل انبیای بزرگ و انبیای کوچک هست. امبیای بزرگ به خاطر این بزرگ خوانده نشدن که اونها افرادی برتر بودند و امبیای کوچک افرادی پایین تر. بلکه امبیای بزرگ زیاد صحبت کردند. شست و شش باب و پنجاه و دو باب و چهل و هشت باب. مدتها طول کشیده تا اونا چیزی رو بگن. امبیای کوچکتر کوچکتر خوانده شدن چون یک باب و دو باب و سه باب دارن. اونا احتمالاً واعظین بهتری بودن و تونستند پیغامشون رو تونستن بکنن در عهد جدید هم پنج نو کتاب داریم. قبل از همه چهار زندگی نامه ی ایسا هست. متی مرقس لغا و یوحنا. اینها عرصه های مختلف مهمترین زندگی دنیا رو عرضه می کنن. بعد از اون یک کتاب تاریخ داریم. کتاب اعمال رسولان. بعد از اون رسالات رو داریم. مثل رسالات پولس، رسالات جامعه. پسر جوانی یه روز از من پرسید آیا؟ یه رساله زن رسول گفتم به لحاظ لغت به نظر میاد باشه اما در واقع اینطور نیست رساله یک نامه هست نصف عهد جدید توسط پولس رسول نوشته شده پس رسالات پولس رسول رو داریم بعد رسالات جامع رو داریم چون اونا توسط نویسندگان به عموم مردم نوشته شده کسانی که پراکنده شده و در جاهای مختلف زندگی میکردند و بلاخره کتاب مقدس با یک کتاب نبوتی خاتمه پیدا میکنه کتاب مکاشفه. اون کتاب رمز هاست. شما باید روح القدس رو داشته باشید که به شما یاد بده واقعا کتاب مکاشفه رو درک کنید. اولین آیه میگه مکاشفه ی ایسای مسیح. پس در کتاب مقدس شست و شش کتاب داریم و این کتابها بر مبنای تاریخ نگارش قرار نگرفتن. بلکه براساس اساس چگونگی کتاب یا به صورت موضوعی قرار گرفتن پنج نوع کتاب در عهد قدیم هست کتاب قانون یا شریعت کتاب تاریخ کتاب شعر، کتابهای کتاب انبیاء بزرگ و انبیاء کوچک و در عهد جدید هم پنج نوع کتاب هست چهار چهارگانه یک کتاب تاریخ رسالات پولس، رسالات عمومی یا جامع و یک کتاب نبوتی مکاشفه وقتی عیسی سالها قبل با شاگردان صحبت میکرد، او بعضی حقایق رو با اونا در درمیون گذاشت که ادراک اونها رو برای فهم کتاب مقدس باز کرد. دعای من اینه که این حقایقی که با شما درمیون گذاشتم، ادراک شما رو برای فهم کتاب مقدس باز کنه و شاید چیزی به شما نشون بده که با چه نگرشی باید به کتاب مقدس نزدیک بشید. وقتی به عهد قدیم نگاه میکنید، بدونید که پیغام اصلی اون اینه که عیسی خواهد آمد. این چیزیه که مفهوم حقیقی و واقعی عهد قدیم هست وقتی به عهد جدید میرسید به این پیغام متوجه باشید عیسی آمد این مفهوم واقعی و حقیقی عهد جدید هست ایمان دارم این چیزی که شما باید انتظار داشته باشید در عهد قدیم و عهد جدید به اون پی ببرید اولین تکلیف شما حفظ کردن ترتیب به کتاب های کتاب مقدسه تعجب کنید که چرا از شما میخوایم ترتیب کتابهای کتاب مقدس رو حفظ کنی به این دلیلی که وقتی واعظ از کتاب حجی متنی رو قرائت میکنه دست پاچه و شرمنده نشید که نمیدونید آیا این تو عهد قدیمه یا عهد جدید و برای اینکه شما بدونید هر کتاب از کتاب مقدس در کجا قرار گرفته اونا رو حفظ کنید و بدونید عنوانشون چی هست تلفظ صحیحشون رو به خاطر بسپاری فکر میکنم این به شما در موقع مطالعه کلام خدا کمک خواهد کرد دومین تکلیف شما حفظ کردن آیات 16 و 17 از باب سه دوم تیم و, و جواب دادن به سوالات مربوط در کتابچه تکالیف است. خب دوستان، وقت امروز ما تمام شده. ترتیبی بدید در آینده در ادامه مهمترین متعالیه دنیا متعالیه کتاب خدا، کتاب مقدس همراه ما باشید. کسانی رو که علاقمند آگاهی و درک کلام خدا هستند، دعوت کنید به ما بپیوندند. دانشجویان عزیز نخستین درس از بررسی عهد قدیم از دانشکده کوچک کتاب مقدس رو شنیدین این دوره مخصوص کسایی که میخوان کلام خدا رو مطالعه کنن ضمن شنیدن این درس ها کلام خدا رو درک خواهید کرد و کلام اون در شما ساکن خواهد شد و بعد چیزهای حیرت انگیزی پیش خواهد اومد لطفاً ترتیبی بدین که در برنامه بعد همراه ما باشین و از دیگران دعوت کنین به شما ملحق بشن تا به همراه هم در دانشکده کوچک کتاب مقدس بیاموزیم